بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبيائي وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد هم شنان بحث نشانه روز قيامتها السين حدث منتمنى شهدون حديث, منت من حديث كبه الشروك هذين. فالمدير رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد ستا بين يدي الساعة موضوع پنجمی هستیم در همان حدیث بحث فتنه که می شود جلسه گذشته بحث فتنه هایی که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم شد و توضیح دادیم به شهادت رسیدن عمر بن خطاب دری که شکسته شد که رسول الله علیه و سلی اللہ علیه و سلم فرمودن این شکسته بشه فتنه ها بر امت سرازیر میشن. فتنه ها سرازیر شد بعد از به شهادت رسیدن عمر ابن خطاب کسانی از همین گوشتی که خودمون داریم از مسلمان ها بلند شدن به اسم اسلام به اسم امر معروف و نهی از منکر اومدن به خلیفه سوم مؤمنان اثمان ابن عفان داماد دو دختر از دختران رسول الله علیه السلام را به شهادت رسوندن خونی را بر مصحفی که جلوبش بود ریختن با کمال میشرمی اون شخصی که فرشتگان از شرم میکردن اون اشخاص شرم نکردن و خونش را به ناحق ریختن این فتنه هایی که رسول الله علیه السلام خبر داده بود بعد از عثمان رضی الله عنه مؤمنين وهم اختلاف مكوناً اختلاف المشابات بين تلحي والزبير وأم المؤمنين عائشة وعليم نبي طالب رضي الله عنهم مجمعين اختلافات المشابات كرسول اللهم عليه الصلاة والسلام خبر داد بودان لا تقوم الساعة حتى يقتل فئتان عظيمتان يكون بينهم مقتلة عظيمة دعواهما واحدة عمارت دار نمی نمیشود تا اینکه دو طائفه بزرگی از مؤمنین به جنگ همدیگر بیان مؤمنین اسم ایمان بر آنها گذاشت. همونطور که خداوند اسم ایمان بر آنها گذاشت و این طایفتانی من المؤمنین اقتتلوا. دو طائفه دو گروه بودن از مؤمنین هم معاویه و اصحابی که دنبالش بودن و هم علی بن طالب اختلاف یک اجتهادی از صحابه که بعضی ها درست و بعضی ها نادرست بود اجتهاد کردن و این فتنه ها پیش آمد و من شعش گفتیم اون بی ادب و بی تربیتی بود که ایساد روبروی در رسول الله علیه و گفت ای رسول الله عدالت کن، اعدل یا رسول الله به خودش اجازه داد که این گستاخی رو بکنه و بر حرفتی بر علیه الصلاه و السلام حرف بزنه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر می دهند که از نسل این کسانی خارج خواهند شد که یمرون منین که ما مرق سهممون نقامیه. چنان از اسلام با سرعت عبور میکنن همانطور که تیر با سرعت از کمان عبور میکنه و از سید عبور میکنه که نمی بینید از خون و گوشت اون حیوان به اون تیر چسبیده باشه. یعنی فهم جزئی از اسلام یه چیزهایی هایی را از اسلام میدونن جزئی ميان و توجه بأنت فهم جزئيشم بر مسلمان قضا فقم يكونا يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان و كما قال عليه الصلاة والسلام مسلمان رميكوشن و مشركين رميكونا بل بجون مسلمان رميكوشن رسمان ابن عقار بشهادات رسولان بعدا فتنها يندفتا كسبب شد كون خلص أصحاب رشته بشهد يك مسأله يهز که هی تکرار میشه زمزمه بعضی از دوستان هست این که ما داریم میگیم نشانه های قیامت چه نشانه ای در شا... به شهادت رسیدن عمره قیامت که هنوز مونده برپا نشد یعنی چی نشانه قیامت چرا هی میگید شما نشانه های قیامت این کلمه نشانه هایی که ما اینجا هی یادش میکنیم کلمه نیست که ما از خودمون ورده باشیم و با اینجا گذاشته باشیم کلمه هست قرآنی که خداوند در قرآن یاد میکنه از این کلمه کلمه اشراف اشراف این علامات یعنی نشانه فهل یندرون ایل ساعت ان تأثیه هم ایم منتظرن که قیامت بیاد فقد جاء اشرافها فقد جاء اشرافها نشانه اومده چی بود این حدیث؟ نشانه ها که و وفات رسول الله علیه الصلاه و السلام که داشتیم اعوذ بين ايدي الساعه موتي ثم فتح بیت المقدس ثم وثانيه ياخذ فيكم كقصاص الغنم اینا اینا که ما داشتیم وفات رسول الله طاعونی که میاد اون مرغمیری که میشد بر اثر طاعون اینها نشانه هاست نشانه هایی که خدا من ذکر میکنه حالا گفتیم این چرا کلمه خدا من نشانه را به بار برد علامت را به بود برد کلمات شرعی ما میتونیم براش مدلولاتی را پیدا بکنیم مدلولات این کلمات شرعی زیاده گفتیم یا این شرع میخواهد مهر تأیید بزنه بر گفته های الله علیه السلام میخواهد بگه حرفش سخنش حقه دید گفت شد حق. و اون سخنانی که هم یاد کردن آن چیزی که میشه بد هم حقه قیامت اگر گفته میشه بد می حالا چرا این نشانه ها رو رسول صلی علیه و وسلم گفتن و هی این نشانه ها تکرار میشه ولی هنوز که آمد باقی مونده ما گفتیم این مسئله رو توضیح دادیم بازم توضیح میدیم که این ابهام از ذهنمون پاک بشه ما گفتیم رسول الله علیه صلی اللہ در بیان نشانه ها چنین میگن؟ میفرمایم؟ که بین خلق آفرینش که آغاز شده و بین من از این انگشت تا این انگشت و از من تا قیامت این قد باقی مانده این فاصله که بین این انگشت به این انگشت وسط این قد فقط باقی مونده. فاصله کمی یا زیاده، فاصله کمی. در این فاصله کم نشانه های رو خواهد داد دلالت هایی که دلالت دادن این یک نوع دلالت هایی داشته باشن بر گوهوه قیامت یک دلیلی باشه که همونطور خدا فقط جا اشرف و نشانه هاش اومده این نشانه ها شیعه از وفات رسول الله شروع میشه از بعثتش بعد وفاتش و بعد به شاد رسیدن عمر بن خطاب تا هیثی السلمار در این نشانه ها تکرار میشه این نشانه هایی داره تکرار میشه نشانه های متعدد گفتیم کلمه قرآنی هست برای این که ذهن من باز بشه مثلا به فرد من گفتم این رو زدم باز این مثالو تکرار میکنم یک شخصی قرض میدم میگم من 50 روزه به قرض دادم چلو پنج روز گذشت 5 روز واقی مونده من چی بهش میگم میگم نگاه کن نزدیک میشه 5 روز دیگه باقی مونده این 5 روز به مقدار چلو پنج روزی که گذشت از پنجاه روز مقدار کمی یا زیاد مقدار خیلی کمیه به نسبت 45 روزی گذشت قیامت پس نزدیکه نشانه هایی که دلالت بر قیامت هم هیچ رو خیده فتنه فتنهی که در این حدیث بیان شده که پنجمین فتنه ای هست که در این حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و به ده کلمه کلمه‌ای عامی این عبارت رو میگن فتنه ای می شود که در هر منزلی وارد میشه این فتنه شاید جانی باشه شاید مالی باشه شاید فکری باشه فتنه‌های جانی ما داشتیم گفتیم بحث خوارج که شد از اونجا آغاز شد و از توهین و احانت بشر و عدم قناعت به سنت مصطفى عليه الصلاة والسلام آغاز شد. فتنه ها های متفاوتی داشتن. از فتنه هایی که در امت شده به رسول الله عليه الصلاة والسلام خبرش داده. آمدن اشخاص بود. آیا با ادعای قیمبری یا با جعل احادیث نبوی. یا باید دعایتی هم بری که ما در حدیث بخاری داریم همون حدیث لا تفو مصرح حتی یفتت لفئتان عظیمتان که گفتیم قیامت برکان نمیشه تا اینکه دو طائف بزرگ از مؤمنین به جنگ هم دیگر بیان در نباله حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان و حتی یبعث دجالون کدابون تا اینکه دجال ها و دروه بیان قریب قریب من ثلاثين نزدیک به سی نتر كل هم الله. هر کداوم از اینها ادعای نوبت داره. حالا شخصی میاد خب یکی خابیگی نفر کید شدن نشدن ما نمیدونیم که حالا این تعداد کامل شده یا نشده اگر مکوم عدد اعتبار داشته باشد. جاهای اعدادی در شرع بیان میشه از باب تثیر از باب زیادی. تعداد بسیاری میان ادعای نبوت می کند اولیش کی بود مسلمه کذب دومی کی بود اسود حنسی از یمن بلند شد سومی کی بود مختار سقفی مختاری که ازش فیلم می سازن ازش کهرمان می سازن کسی بود که ادعای نبوت کرد تاریخ ما سرشار از روایت های هست که دلالت میده بر دروگو بودن این شخص و ادعای نبوتش همچنان ادامه میابه این سلسله دروگوها که ادعای نبوت میکنن آخریش هم ما داشتیم در شفقاره هن شخصی به نام غلام غل میرزا احمد قادیانی شبکه یادارم در ماهواره به اسم شبکه احمدیه گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله من خاتم نبیین هستم خاتم به معنای ختم نیست، انقضا نیست. خاتم در لغت عربی یعنی انگشتر. من انگشتر پیامبرانم و این انگشتر پیامبر فرموده من انگشتر پیامبرانم و این انگشتر الان به من رسیده. ادعای پیامبری میکنه این شخص. بعد انگلیس میاد در این شخصی قهرمان میسازه به خاطری که جهاد رو لغو میکنه میگه جهادی در اسلام نیست. کتابی هم بنویسه در باطل سازی قران نماز را رد میکنه جهاد رو رد میکنه روزه رو رد میکنه چیزی برای اسلام نگونه کل مجامع اسلامی تکفیرش کردن از هر کل مجامع کل اون هیئت فتوایی که حسن همه چرا چون این اشخاص اسلام را نتذیر وقتن اسلام وارد اسلام نشدن یک اسلام جدیدی یه چیز جدیدی اووردن همچنان پس این تسل کسانی که ادعای نبوت بکنن هستن و شاید هم بازم یک کس جدیدی داشته باشیم که این ادعا را بکنه. این از نشانهای نبوته اشخاصی بیاد ادعای نبوت بکنن ادعای نبوت یکی از خطله ها بود که او بکر صدیق و انداله آن اومد مبارزه کرد با مسلمه نیک از مبارزه کردن اصحاق فتنه ها شد اونها اومدن در وسط اسلام به اسم اسلام به جنگ مسلمانان خونها ریخته شد فتنه هم از لحاظ فکری هم از لحاظ مادی و همچنین دروه هایی که اومدن به اسم اسلام دین را قرار بکنن با جعل احادیث نبوی حمض ذلك دار حديث لا صحيح مسلم من حديث الطبري يقولنا دار صحيح بخاري وذاته مصح حتى يقتتل فأتاني عظيمتان دار صحيح بخاري يقول صحيح مسلم دارين رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم كسانبيان ذرقو بأحاديث جعلي كن شموش لدينا أباجداد فأياؤهم أيهم بالحذار بشيت أذنها لا, لا شما را در فکر نیندادن گمراه کن نکنند با احادیث جعلی کسانی اومدن به اسم تشویق و ترغیب به اسم تشویق کردن برای تلاوت قرآن احادیث جدید در تصیر قرآن مثل یو حبنون مریم اومد گفت که من احادیث را برای رسول الله میگم نه برزده رسول الله اومدم به نفع اسلام میگم دارن مردم را تشویق میکنم به قرآن خونی حادث در فضایل قرآن میذارم در فضیلت سوری انعام در فضیلت سوری یاسیم ما هیچی در برای سوری صحیح نداریم و نه در سوری واقعه نه در سوری الرحمه رحمه ولیکن این اشخاص اومدن با جعل احادیث دروغین مردم را, را به ادعای خودشون تشویق کردن به قرآن خونی درسته به اسم تشویق به دین ما دروغ بگیم من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو فهو احد الكاذبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم باظ كصحيح حديث الناقل كنا دروغ واشه ان شخص ينقل دروغ يكي از دروغ جوانه فهو أحد فانه الكذابين يكي از دروغ جوانه يكي از اون دوتا دروغو يا يكي از اون دروغ جوانه حديثه رو شما بیاد به مردم نقل بکنید بدون اینکه بررسی بکنید که آیا صحت داره یا نه این از جمله جرمهایی هست که ما مرتکم میشیم نقل احادیث موجود و درو چرا؟ چون چسباندن حدیثی بررسیده صلی الله علیه وسلم چسباندن آن به خدابنده که صاحب وحید بررسیده علیه صلی اللہ علیه و خذ بخود تقبل برسول الله عليه الصلاة والسلام تقبل ب الله بشيء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا شو مداري من الدعاء بحني كل بكتي ميجيم رسول الله شين هار في روزداب خداما برشوف كذا وخداما صاحب أنواع حني سبحانك كذا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ظن صاح شهارة چیزهای زشت و زننده رو خداوند حرام کرده از جمله انت قول علی الله ما تعلمون به نسبت خدا چیزهایی بگی که شما نمیدونید بچسبید به خداوند یا به دین خداوند چون دین از طرف ما که نیست دین از طرف خداوند و رسول الله صلوات الله ناقل اون دینه از نماز گرفته و رکوع سجده گرفته تا از کاری که در اونها خوانده میشه همه اینها تشریعات خداوندیه اتفاق مسلمانان تشریع نمود از رکوع و سجده و اسکاری که درش خوانده میشه به اجماع امت بدون هیچ اختلافی بحیه خدا ماندیه راستا با از خودش امت گفت رکوع شورف این توری رکوعو بکنی چهار ایسی در فنا وقتی ایسی نه شکی درشیسته بحیه خدا ماندیه دستور خداوندیه کسی بیاد جعل کنه یک دستور جدید جدیدی رو بیاره تقبل بر خدا بشه بخاطر همي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمى من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جاي ان شخصي كه دروغ به رسول بنده جاش جهنم جاش مشخص شده دا اصلا در جهنم اون شخص مازه بود باش چه حدیثی را برای مردوم میگویند راه دروس مشخصه راه و ان هذا ترابي مستحي من فتبعه. راه دروس مشخصه خداوندم حفظ صیانت کرده حدیث رو برهم حفظ کرده و امامان و مدان کتاب ها رو نمیشنن در علم راجع به علم مسله حدیث صیکی مامویت نیم حدیث صحیرات غیر صحیره شیسکی. و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین صل الله عليه و آله و آله